صفحه 190 تئوریه سازمان چاپ و انتشارات اقبال صفحه 190 آنها مرا از ناخدای کشتی تحویل گرفتند و قبلا لباس گرانبهایی که به فرمان سلطان برای من آورده بودند به من پوشاندند و مرا از کشتی به بندر آوردند و در آنجا بر روی اسب زیبایی که سلطان فرستاده بود نشاندند و به سوی دربار سلطنتی حرکت کردیم سلطان و تمام درباریان عمرا با بیتابی در انتظار من بودند و میخواستند ورود مرا با احترام هرچه بیشتر گرامی دارند دفته سواران در دو طرف در حرکت بودند در طول راه مردم هیاهو میکردند و تمام اهالی شهر از هر نقطه‌ای به سوی مسیر موکب ما در حرکت بودند و اهالی از هر گروه و طبقه در انتداد مسیر حرکت من گرد آمده بودند و با شگفتی و شوق فراوان در انتظار بودند که چگونه میمونی به نخست وزیری پادشاه برگزیده شده است زیرا این شایعه که سلطان میمونی را به نخست وزیری انتخاب کرده به سرعت در سراسر شهر منتشر شده بود مردم همگی غرق حیرت بودند و مرا به یکدیگر نشان میدادند و صدای فریادهای شادی و ناباوری آنها فضا را پر کرده بود سرانجام من وارد قصر سلطان شدم پادشاه بر تختی نشسته و بزرگان درباریان در حضور او جمع بودند من سه بار پیاپی پی تظیم ملایه می کردم و زمین را نزدیک پای سلطان بوسیدم و بعد از آن در محلی که برای من در نظر گرفته بودند نشستم تمام حاضرین مرا مورد تحسین قرار دادند همه مبهود بودند که چگونه میمونی این همه با تشریفات و احترامات درباری و رفتار در حضور سلطان آشنا می باشد همه با خود زمزمه میکردند که چگونه میتوان باور کرد میمون بداند تشریفات درباری یعنی چه در حالی که انسانهایی هم که در دربار آمده شد ندارند به تشریفات دربار آشنایی ندارند خود پادشاه نیز آثار بخت و حیجان از چشمان گشاد شده اش آشکار بود شاهان همه حاضرین را مرخص کرد فقط خودش بود رئیس دشقیمان درباری و یک غلام سیاه کوچک و من شاه در این هنگام از سالون تشریفات به قصر اختصاصی خود رفت و دستور داد که شام او را به آنجا ببرند همین که شاه پشت میز قضاخویی نشست با دست به من اشاره کرد که سر میز بنشینم و با او هم قضا شوم برای ادای احترام زمین را بوسیدم و ایستادم و شاه با دست خودش مرا رو روی صندلی نشانید و با متانت و فروتنی به خوردن غذا پرداخت پس از غذا ناگهان چشمم به قلمدان و کاغذی افتاد به اشاره فهماندم که آن را نزد من بیاورند همین که قلمدان را گرفتم قلمی درآوردم و در دوات قلمدان زدم و شعر زیبایی برای شاه نوشتم و شرح مختصری از رنجها و حوادث لاغوار بر روی صفحه کاغذ منعکس کردم شاه ارغون و فقولاده تحت تاثیر قرار گرفت و گفت این میمون با کفایت و با سواد باید به مقامی بالاتر از بزرگترین مردان بزرگ نائل شود. بعد از آن سلطان دستور داد جدی شکران را حاضر کردند و از من پرسید که آیا آشنا به آن بازی هستم؟ من هم زمین را بوسیدم و در حالی که دستم را رو روی سرم گذاشتم به او فهماندم که بازی با سلطان افتخار بزرگی برای من به شما میآید. دست اول را سلطان برنده شد ولی دست دوم و سوم را من از سلطان بردم اما وقتی حس کردم که سلطان قدر دلخور شده است دست چهارم هم بازی کردم و عمدن به او باختم مطالبی گفتم و رختارهایی از خود نشان دادم که هیچ کس نمی توانست هرگز باور کند که در دنیا امکان دارد میمونی از خود چنین حالاتی را نشان دهد و یا تا این درجه آگاهی از دانشهای آدمیزاد داشته باشد شاهیرزاده به رئیس دشخیمان دستور داد که برود و دختر سلطان را که ملکه زیبایی لقبش بود به حضور آورند تا او هم از گفتار و حرکات این میمون خارق‌الاد لذت ببرد رئیس دشخیمان فوراً به دنبال ملکه زیبایی رفت و بعد از مدتی شاهزاده خانم که صورت او بدون نقاب و باز بود ظاهر شد و همین که وارد اتاق شد نقاب خود را بر چهره گذاشت و با تعجب خطاب به سلطان گفت سلطان توجه ندارند که مرد در حضورتان نشسته است و قبلا من به این موضوع پی بردم سلطان با حالت متحیر گفت غیر از من و غلام سیاهی کوچک و این میمون مردی در بین ما وجود ندارد شاهزاده گفت این میمون انسان است در واقع شاهزاده است که جن اون را به این صورت در است این پسر پادشاهی بزرگ است و جن هم کسی است که اول دختر پادشاه جزیره آبنوس را با وضع فجیهی به قرد رسانده و بعد از آن این شاهزاده را به این صورت در آورده است سلطان در شگفتی فرو رفت و نگاهی به من کرد و میخواست بفهمد آنچرا که دخترش گفته مورد تایید من است من هم سر خود جا به علامت تصدیق تکان دادم سپس سلطان از دخترش پرسید تو اینها را از کجا می دانستی؟ دختر جواب داد من جادوگری آموختم و دانش من در این رشته به حد کمال است و همچنین می توانم این کشور را به صورت جزیره‌ای در دریا درآورم و یا آنکه پایتخت کشور شما را در یک چشم به هم زدن به قله کوه قاف منتقل کنم با دانش جادوگری در اولین نگاه تشخیص دهم که اشخاص تغییر شکل دادهاند. وقتی این میمون را دیدم فوراً فهمیدم که فرزند شاه است که توسط جنی به این شکل در آمده و می توانم فوری ساده را به صورت اول خود درآورم. سلطان از دخترش خواست که مرا به صورت اولی خود درآورد. دختر سلطان قبول کرد و به اتاق مجاور رفت چاقوی با خدا آورد که چند عبری بر روی تیغه چاقو حک شده بود بعد دختر سلطان همه ما را به همراه خود در حیات خلوتی برد که در مجاورت قرص قرار گرفته بود و از آنجا ما را به قسمت زیر تالاری برد سپس او در وسط حیات دایرهای ترسین کرد در میان آن کلمات ابری که بعضی از آنها خیلی قدیمی و بعضی از آنها را هم که علفای کلوپاتران نامیده میشد نوشت وقتی همه چیز آماده شد آنگاه دختر سلطان در میان دایره قرار گرفت و کلماتی از قرآن را خواند. در این هنگام آسمان تاریک شد و ترس شدیدی همه ما را فرا گرفت و هر لحظه ترس ما بیشتر میشد تا جن پدیدار شد این جن نوه ابلیس بود اما ناگهان خود را به صورت شیری ظاهر ساخت دختر پادشاه با فریاد شروع به ناسازاگویی به جن کرد و گفت ای سگ پس تو خیال کرده من از تو میترسم. ترسم جن نرزد که تو برخلاف پیمان خود با من رفتار کرده ای تو سوگن خورده بودی که کاری برخلاف و به زیان من انجام ندهی اینک تو برخلاف میل من میخواهی این میمون را به حالت اولش برگردانی. شیر دهان خود را باز کرد و به دختر سلطان حمله برد که او را بدرد. دختر که آماده بود خود را عقب کشید و خود را به شکل شمشیر برندهی در آورد و شیر را از کمر به دو قسمت کرد. دو نیمه بدن شیر ناپدید شد و فقط کلش باقی ماند که خود را به شکل اقرب بسیار بزرگی در آورد. بلافاصله فاصله خانم خود را به صورت مار در ولی وقتی فهمید اقرب از او قوی تر است خود را به شکل عقابی در و به هوا پرواز کرد اقرب هم خود را به شکل عقاب قوی تر و بزرگی در آورد که به دنبال او به آسمان پرواز کرد و هردوی آنها از دید ما خارج شدند پس از مدس زمین شکافته شد و گربه ای رنگ سیاه و سفید که موهایش راست شده بود و صدای عجیبی از خود ا و گرگ سیاه رنگی هم به دنبال او بیرون آمد و مجالی برای استراحت گربه که با شتاب خود به بیرون رسانده بود نداد گربه که حس میکن راه فرا ندارد خود را به شکل کرده رو و و را به نزدیک اناری رسانید که درخت آن ناگهان در کنار نهر موجود رویده شد و انار آن درخت روی زمین کنار نهر افتاده بود کم را به داخل انار چپانید و ناپدید شد و انار شروع به بزرگ شدن کرد تا آنکه به اندازه یک کدوی حلوائی شد و بعد ترکید و دانه‌های های آن روی زمین پخش شد. گرد که در این فاصله خود را به صورت خروسی درآورده بود در حالی که پرابال خود را گسترده بود به طرف دانه‌های انار حمله شد و همیه دانه ها را بجز یکی که در گوشه‌ای نزدیک نه افتاده بود از روی زمین برچید. بعد به سوی ما نگاه کرد. مثل که میخواست بپرسد آن یک دانه در کجا افتاده است سرانجام خروز متوجه آخرین دانه شد و همین که خواست آن را بردارد دانه انار قلتید و خود را به نهر آب انداخت و تبدیل به ماهی کوچکی شد و به زیر آب رفت خروز به داخل نهر آب پرید و خود را تبدیل به مرغ ماهی خاری کرد که به دنبال ماهی شتافت در حدود دو ساعت و نیم از جن و شاه ساده بیخبر بودیم و نمیدانستیم که در زیر آب بر سر آنها چه آمده است؟ بالاخره نخر نره پیاپهی بلندی به گوشمان رسید و مشاهده کردیم که جن و شاهساده در شله آتش می سوزند و فریادشان به آسمان بلند است و از دهان هر دو آتش فوران می کند آنها میخواستند یکدیگر را از بین ببرد. شره های آتش هرلحظه زبانه میکشید و بلندتر میشد. به طوری که نزدیک بود آتش آن به قرص سرایت کند و همه جا را در کام شله های سرکش خود فرو برد ترس و نگرانی ما هن بیشتر میشد. در این شرایط بسیار ناگوار چنانچه شاهزاده به یاری ما نشتافته بود حتما شله های آتش همه ما را نابود و تبدیل به خاکستر کرده بود ولی شاهزاده تلاش و کرد اما با این همه ریش سلطان آتش گرفت و به صورت اولف مارش شد و رئیس دشخیمان به کلی سوخت و تبدیل به زغال گردید و جرقه ای از آن آتش سوزان هم در چشم راست من وارد شد که منجر به نابینایی از آن چشم شدم. در چنین صحنه هولناک و حریق بزرگ که همه ما را به نیستی تهدید میکرد خودمان را آماده مرگ کرده بودیم. ناگهان فریادی به گوشمان رسید که میگفت پیروزی پیروزی در این هنگام شخصاد خانم را دیدم که به صورت اصلی خود نمایان شد و جن که کاملا تومه آتر شده بود سوخت و به شکل تلی از خاکستر روی زمین باقی ماند سپس شاهزاده آب طلبید و گفت باید عجله کنم وقت می گذرد سیاه کوچک ظرف آب آورد شاهزاده شخصاد خانم ظرف را گرفت و کلماتی چند که نامفهوم بود زبان جاری ساخت و آب را روی من ریخت و گفت خدایا اگر این میمون در اصل انسان بوده است دوباره او را به حالت انسان برگردان در همین لحظه بود که من به صورت قبلی خود برگشتم در حالی که چشم راست خود را از دست داده بودم میخواستم از شاهزاده خانم تشکر کنم ولی او مرا اشاره به سکوت کرد و به سلطان گفت ای پدر همانطوری که خواسته بودید فرمان شما را اجرا کردم و بر جن پیروز شدم ولی من بیش از چند دقیقه دیگر از عمرم باقی نمانده است زیرا در این نبرد مرگ و زندگی بین من و جن آتش کار خود را کرده و درون من آتش گرفته و اینک به تدریج میسوزم تا به تلی از خاکستر تبدیل شوم بنابراین دیگر فرصتی باقی نمیماند تا تکلیف زن و مرا با او بدهید اگر چنانچه توانسته بودم موقعی که خروج شده بودم آخرین دانه عنا را هم مانند سایر دانه‌ها برچینم چنین حادثه‌ای رخ نمیداد. اگر دانه آخری انار را برداشته بودم مبارزه من با جن به پیروزی من بدون لطمه‌ای به من پایان می‌گرفت ولی چون نتوانستم و جن آخرین جادوی خود را به کار برده بود ناچار شدم دست به دامان آتش که آخرین هربه موثر من بود بشوم و به مبارزه تن به تن خود با جن بین بهشت و دوزخ بپردازم که همه شماها شاهد آن های سکر و سوزاننده بودید آقابت توانستم جن را با آن همه تجربه و حیله های جادوگری مغلوب کنم و به او ثابت نماییم که دانش جادوگری من از او بیشتر و بالاتر بوده است. سرانجام او را سوزاندم و به خاکستر تبدیل کردم ولی خودم هم ناچار به سوختن و از بین رفتن شدم و رفته رفته مرگ من نزدیک می شود. سلطان که شاهد مرگ جگرگوشه خود بود، در حالی که به پهنانی صورت خیش عشق میریخ، رو به شاهزاده کرد و گفت، من که تو را از دست میدهم، زنده بودن هم چه فایده دارد؟ آنگاه به دخترش ملکی زیبایی گفت، فرزند دلبندم بندم، درباره نورد خود با پلیدی آلودگی باز هم صحبت کن، دختر زیبا باز هم در مورد مبارزهش با جن سخن گفت، آنگاه سلطان از او تشکر کرد و گفت زیبای من. زیبای زیبایان حال نظار پدر را ببین من بدترین لحظه ها را میگذرانم. جان فرسایی تمام وجودم را فرا گرفته. جای تعاسف است که من زنده می مانم و تا از بین میرو. در این لحظه اهساده خانم فریاد کشید. آخ سوختم سوختم. درد و سوزش سوختن امان او را بریده بود. آنقدر فریاد و نال زد تا تمام بدنش طمعه حریق شد. و به صورت تلی از خاکستر درآمد. من قادر به بیان شدت اندوه و خود نیستم. آنقدر می‌دانم که شاهزاده خانم زیبا و نیکوکار به خاطر رهایی من از تلز جان شیرین و جوانی خود را فدا کرد. اگر شاهزاده نبود، من تا آخر عمر به صورت میمون باقی می‌ماندم. سلطان آنقدر بر سر صورت خود کوبید و خود را به زمین زد که عاقبت از حال رفت. و نگهبانان و خدمتکاران به یاری او آمدند و او که قادر نبود راه پرود زیر بغل او را گرفتند و به حالت خمید او را به خوابگاهش بردند وقتی خبر مرگ ملکه زیبایی دختر سلطان در شهر منتشر شد مردم ازای عمومی اعلام کردند و هفت شبان روز ازاداری کردند و به سلطان تسلیت گفتند مراسم گوناگونی در سراسر کشور برپا شد تا خمدردی و غم خود به آگاهی سلطان برسانند خاکستر جسد افریت را برباد دادند و خاکستر پیکر شاهزاده زیبا را در خاکستردان کرامبه جای دادند و در آرامگاه پرشخوهی که برای او ساختند دفن کردند سلطان از غم مرگ دختر بیمار شد و مدت یک ماه متوالی بستری گردید یک ماه پس از تاریخ حادثه ناگبار مأموران سلطان به سراغ من آمدند و گفتند سلطان تو را احصار کرده است. بیدرنگ به همراه مأمورین به حضور سلطان رفتم. سلطان گفت هرچه چه باید فورا اجرا کنی و ایلا ممکن است نافرمانی تو برایت بسیار گران توام شود. پاسخ دادم امر سلطان را اطاعت می کنم. آنگاه به سخن ادامه داد و چنین گفت من زندگی آرام و خوشی داشتم. و از روزی که پای تو به دربار و خانواده ای من رسید بدبختی و ناخامی به من روی آورد وجود تو در سرزمین من جز بدبختی چیز دیگری به همراه نیاورده است این است که از تو میخواهم هرچه زودتر اینجا را ترک و دیگر پایت به این سرزمین نرسد و اگر اینجا برگردی جان خود را از دست خواهی داد من از حضور سلطان خداحافظی کردم و یک راست به گرمابهای رفتم ریش و موی ابرو و سرم را تراشیدم و لباس دویشی پوشیدم تا هیچ شناخته نشوم و سفر را آغاز کردم و احساس کردم که وجود من موجب مرگ جوش‌آساده خانم و, و کار شده است. در طی سفر از چندین کشور عبور کردم و هویت خود را فاش نساختم. سرانجام تصمیم گرفتم به بغداد بیایم و به حضور خلیفه بروم و شرح غم‌انگیز زندگی خود را برایش بگویم. شاید از بدبختی و ناخامی من متأثر شود و مرا یاری کنند دیشب از دروازه بغداد وارد شهر شدم و این درویش را دیدم و به او سلام کردم در همین زم درویش دیگر هم رسید و هر سه با یکدیگر دوست شدیم و بقیه داستان را هم که خودتان تا حال حاضر اطلاع دارید وقتی سرگذشت درویش دوم به اینجا رسید زبیده گفت بسیار خوب داستان هیجان انگیزی بود حالا تو آزادی و به هر کجا که مایلی می‌توانی بروی درویش گفت اجازه دهید که من هم مانند دو نفر دیگر در اینجا بنشینم و به سرگذشت سایرین گوش دهم زبیده گفت تو هم می‌توانی داستان سایرین را بشنوی برو و در آن گوش بنشین سومین درویش رو به زبیده کرد و گفت ای بانوی من، سرگذشته من با سرگذشت این دو نفر کاملا تفاوت دارد. سرگذشت سومین درویش من برخلاف دو شاهزاده قبلی چشم خود را بر اثر اشتباه خود از دست دادم و این من بودم که با دست خود موجب ناخوشنودیم را فراهم کردم. من عجیب نام دارم و پسر پادشاهم نام پدرم قاصب بود. بعد از درگذشته پدرم من به جانشینی او بر تخت نشستم و صاحب خیار تمام سرزمین ها و متصرفات او شدم شهری که من در آنجا زندگی می کردم در کنار دریا واقع شده بود و یکی از زیباترین بنا در دنیا به شمار می آمد. ما پنجاه ناو جنگی آماده نبرد دریایی داشتیم و علاوه بر آنها دارای چندین کشتی جنگی بادباندار و چندین قایق بزرگ تفریحی بودیم انای خاک سرزمین من بسیار پهناور بود و چندین استان و جزیره های بزرگ و کوچک را در بر می گرفت نخست این کاری که پس از مرگ پدر کردم آن بود که تمام نافگان خود را آماده کردم و خدمه کافی و تجهیزات و وسایل کامل تهیه دیدم تا تمام جزیره ها و سرزمین پهناور کشورم را از نزدیک بازدید کنم نزدیک. این سفر دریایی را چندین بار تکرار کردم و هر بار به جزیره‌ای و دیدن مردم آن مرا شاد می کرد و رفته رفته بر دانش و آگاهی من در دریانوردی نوردی می افزود و شادی مرا چندان کرد تا آنجا که تصمیم گرفتم برای کشف آن سوی جزایر سرزمین خود و آگاهی بر دریاهای آنسو ده ناو بزرگ را آماده سفر دریایی کنم و در یکی از روزها که هوا و باد مساعد بود سفر بزرگ دریایی خود را شروع کردم. چهل شبانه روز در دریا پیش رفتیم و هوا کاملا مساعد بود اما در شب چهلم مسافرت باد تندی شروع به وزیدن کرد و رفته رفته طوفانی برپا شد به طوری که فرمان کشتی دیگر در اختیار ما نبود ولی در هنگام طلوع آفتاب طوفان فرو نشست و دریا آرام شد. و خود را در کنار جزیره ای دیدیم که طوفان شب گذشته ما را به آنجا کشاند بود. دو روز تمام در آن جزیره به سر بردیم و آذوقه تازه و آب آشامیدنی تهیه کرده و دوباره سوار بر کشتی شده به راه خود ادامه دادیم. ده روز تمام می گذشت که ما به امید رسیدن به خشکی در دریا حرکت می کردیم ولی برخلاف انتظارمان اثری از خشکی دیده نمیشد آن وقت فهمیدیم که طوفان قبلی به کلی ما را از مسیر صحیح دریایی منحرف ساخته و به نقطه دور دستی هدایت کرده. من تصمیم گرفتم که به سواحل سرزمین خودمان برگردیم ولی دریافتم که ناخدای کشتی جهت خود را گم کرده و در میان دریا سرگردانیم. یکی از دریا را بالای دکل اصلی کشتی فرستادم تا از آنجا به اطراف نگاه کند. شاید بتواند خشکی را ببیند. ولی پس از مدتی تماشا از بالای دکل فریاد کرد که جز آسمان آب دریا که در افق به هم رسیده اند چیزی نمی بیند. اما در مقابل سر کشتی شیء سیاهی از دور جلب توجه می کند. وقتی ناخدا شنید که شیء سیاه رنگی در فاصله دور دیده می شود رنگش تغییر کرد و دستار از سر برداشت و بر زمین کفت. وریش خود را چنگ زد و گفت ما همه نابود خواهیم شد و راه فراری نداریم من با این همه مهارت و تجربه در دریا نوعدی که حس می کردم کاری نمی توانم انجام دهم آنچنان ترسیده بودم که گویی نیستی همه ما را به چشم خود می دید. ترس او سبب شد که همه سرنشینان کشتی خود را ببازند من از ناخدا پرسیدم علت این همه ترس و نگرانی تو چیست او پاسخ داد طوفان کشتی را به قدری از مسیر خود دور کرده که آن را به کوه خارا نزدیک کرده است این شیء ای سیاه رنگ همان کوه است که دارای نیروی ای است و همین که کشتی ها در فاصله معینی از آن برسند کوه کشتی را به سوی خود می کشاند و کلیه میخ و ابزار فلزی کشتی که قطعات و دیوارهای کشتی را به هم متصل کرده به سوی خود جذب کند. در نتیجه قطعات مختلف کشتی از یکدیگر جدا شده و به صورت تک پاره های در می آیند و سرنشینان هم همگی در کام دریا فرو می روند ناخدا ادامه داد ما فردا حدود ظهر به نزدیکی کوه می رسیم و همه از بین خواهیم رفت آن قسمت از کوه که به سوی دریاست سراسر پوشیده از میخ‌هایی است که از کشتی ها کنده شده یعنی کوه با نیروی آهنربایی که دارد آنها را رو روبوده و به خود چسبانده است و تمام کشتی ها نابود شدند و فرنشینان آن هم به احماق دریا رفتند اینکو قلعه ناهمواری دارد که در بالای آن گنبدی از برونز بر روی چهار ستون برونزی قرار گرفته و در بالای آن گنبد اصلی فلزی جای دارد که آن هم از همان فلز است و بر روی آن سواری نشسته که بر روی سینه سوار صفحه از فلز روی است و بر روی آن صفحه کلماتی از حروف جادوگری منقوش است. آنچه در بین مردم گفتی می شود آن است که این مجسمه باعث از بین رفتن کشتی هاست و تنها راه چاره از این بدبختی آن است که این مجسمه از بالای این گمبت سرنگون شود. ناخدا که سخنانش پایان گرفت باز گریه و زاری سر داد و همه سرنشینان حس کردند که لحظات آخر زندگی را می و هرکس سعی می کرد تا شاید راهی برای رهایی خود از چنگال مرگ بیابد من هم خود را آماده مرگ کرده بودم و در ضمن هر کس هرچه از مال دنیا با خود داشت به سنشینان دیگر کشتی می و یا وسیعت می کرد که به چه مصرفی برسانند یا در صورت زنده ماندن به همان ترتیب رفتار کنند روز بعد همانطور که ناخدا گفته بود ما به کوه نزدیک شدیم و به فاصله رسیدیم که دیدیم می و آهنهای کشتی از جای خود درآمدند و با سرعت به سوی کوه پرواز کردند و با صدای محیبی به کوه چسبیدند و بعد از چند لحظه از کشتی جز چند تکی تخته‌های الوار دیگر چیزی باقی نماند و همه سنشینان هم غرق شدند و خدا لطفه شامل حال من بود زیرا توانستم بر روی تختی از الوار سوار شوم و موج نیرومندی هم مرا به ساحل پرتاب کرد من راه افتادم و با دشواری فراوان خود را به بالای کوه رساندم البته برای بالا رفتن فقط پلکان بلندی بود که از دو طرف خالی بود یعنی دیوارهای در اطراف آن وجود نداشت و فقط باید از همان پله ها بالا رفت من توکل به خدا کردم و پای روی پله ها گذاشتم پلکان باریک و ناهموار بود و باد هم میوزید و حالت خطرناکی پدید آمده بود و می توانست مرا از آن بالا به دریا سرنگون سازد اما سرانجام خود را به آن بالا رسندم و توانستم وارد گنبت شوم. شب را در همانجا خوابیدم و در عالم خواب دیدم که پیر مرد با وقاری به من گفت عجیب فردا زمین زیر پایی خود را بکن و در آنجا یک کمان برونزی و سه عدد تیر وجود دارد تیرها همه از فلز روی ساخته شدند این تیر و کمان در زمانی ساخته شده است که مناسب زمان برای تأمین خوشبختی و کامیابی انسان بوده است و این تیرها با اصابت خود بر ها و پلیدی ها آنها را نابود و کامیابی را جانشین آن می‌سازد. که تو باید با این تیرها و کمان سینه سواری که بر روی اسب نشسته است هدف قرار دهی و با کمال دقت تیر را از چله کمان رها کنی تا بر آن بنشیند آن وقت اسب و سوار آن سرنگون خواهند شد سوار به دریا میافتد و مجسمه اسب در پای تو به زمین سقوط خواهد کرد بعد تو باید مجسمه را در همان محلی که تیر و کمان را بیرون آورده ای دفت کنی و روی آن را با خاک بپوشانی همین که از دفن کردن مجسمه فارغ شدی آب دریا بالا میآید تا میرسد رسد به گنبت در این هنگام قایقی را میبینی که مردی در آن سوار است و در هر دستش پارویی گرفته آن مرد هم از فلزی ساخته شده است که با فلز مجسمه‌ای که به دریا انداختی متفاوت است وقتی سوار قایق شدی هیچگاه نام خدا را بر زبان جاری مکن و خود را در اختیار مسیری که آن مرد فلزی انتخاب میکند قرار بده ده روز تمام قایق در حرکت خواهد بود تا آنکه روز دهم ده وارد دریای دیگری می شود که از آن دریا در انجام به سوی سرزمین خود راه نمایی خواهید شد مشروط بر که در تمام این مدت نام خدا را نبری وقتی از خواب بیدار شدم خیلی خوشحال بودم و به همان ترتیبی که پیرمرد مرد در خواب گفته بود دفتر کردم تیر و کمان را از زیر زمین درآوردم، سه تیر در سن و ها کردم که سومین تیر به سینه سوان نشست و او به دریا سنگوم شد و از پایین پای من افتاد آن را دخت کردم آب دریا بالا آمد تا به بالای کوه رسید بعد هم قایقی از دور شد و به نزدیک من رسید در اینجا خدا را سپاس گفتم و بعد قدم به درون قایق گذاشتم بدون آن که کلامی بین من و قایق ران که مرد فلزی بود رد و بدل شود قایق به راه افتاد و نه روز تمام در دریا میراند در آخرین ساعت روز نهم از دور دور نمای نمایان شد. نوری از امید دلم را روشن کرد و به خود گفتم دیگر هیچ خطری مرا را نخواهد کرد و ناراحتی ها به پایان رسیده است و به قدری شاد و سرشار از خوشی بودم که بی اختیار نام خدا بر زبانم جاری شد. به محض گفتن نام خدا قایق به قعر دریا فرو رفت و قایق راف هم به دریا افتاد و من در سطح آب دریا قرار گرفتم. و ناچار تمام روز را به شنا پرداختم. تا نزدیکی های غروب، خسته و کوفته و معیوس جزیره را که از دور دیده بودم، در نزدیکی خود یافتم. شب بسیار تاریکی بود و اصلا آن منطقه را نمی باز هم شنا کردن را ادامه دادم. دیگر تاب و توان خود را از دست